گاه رپیتون بند منام اور مزد بخشاینده بخشایش کردمیر باع مسو بهو پیروزگر باع مینویش وایش تج ناآت را رای مزداو اشم باوایش تمسی اوش تا عصتی اوش تا ما ای حیات شایی وایش تا آشم آشم باهوایش تمسی اوش تا عصتی اوش تا اوش ما یا تشاهای بهای ش روان از دیناز را ریش را پیت وای یا شاشهرتوه یانای چ ما چش نا رای چپ از ازستای چپ فرادتشازن تو ما چشاشهرتوه یانای رای از شهی و ایشتای آترست چه اهور مزده اشنات را یسنای چه و همای چه رای چه افرست از تا یا چه یتا اهو بری زادت آفرام امروته یتا رتو ششاتی تا چه افرام اشبه ویزوام را تو مزدا مزده مشبه نمشه راتوم یزمه ایده زراتوشت را مشبه نمشه راتوم یزمه ایده ذره یا یه شوناف رو وشیم یه زمده همهش اسپ تشاونام یه زمم ایده یاشاونام و کوی سواسپاف رو وشیه و ایده ابت من اخ و چپ تمم رتواام یه زممدهیه یه توشتمم یه زتا هنگ نوتممه و شه رتواام بی ساتمم ج شاونو و شرت برور توفری تیم ایده. رپیت وینا مشابه نمیشه ایراتوم یزمایده عهونه بایتیم گاو تام مشاعونی میشه ایراتوم یزمایده اشته بایتیم گاو تام مشاعونی میشه ایراتوم یزمایده سپنتاومان یوم گاو تام مشاعونی میشه ایراتوم یزمایده ووک شترام گاو تام مشاعونی میشه ایراتوم یزمایده ویش تویش تیم گاو تام مشاعونی میشه ایراتوم یزمایده برادت شوم زن تو مم چه شبانه مشهد راتوم یز میده شو شم چه ماونترم یز میده عشق زن چه باو چم یز میده و چه عشق سای یز میده باورترک نیست دیبوق نیتای یز میده اپسچه زمست چه یز میده اولبار آفس چه مینگه و او چه یازت های یز یوی و da اوت دشاؤن ام امشاس چه اسبنت او شاآونام ازمایدی شاآونام به کوی سوراوس پنتاو فرا و شایوی ازمایدی باش نوشته شایی یت و ایشته وزیشته منترم وزیشته ورزیا مزیشته اورهیتیا مزیشته ایتیا ورزیا مزیشته وی و ایتیا دینه یا اب بانک عباد بیاخنم چه هنجا منم چه یت استی امیشه ناوست من تنام و ارشنو و و اینکه اشنو غیمتم زنتو مهیرت و یسنایی چه و همایی چه زنتومم چه عشبنم عشیرتوم جزم ایده عشم و هیشتم آترم چه عورم از دا پوترم جزم ایده. توا ماتر موره مزده پتر مشهونه مشهی راتوم یزم ایده هز از آترم هز ایو اینگنم ایمت برس مشه افرستره تم مشهونه مشهی راتوم یزم ایده اپام نبتارم یزم ایده نیریم هم یزم ایده تخمم دام و ایشوب امنم یزتم یزم ایده ایریستن آمور وانو یزم ایده یا وشه و نام را برزنیم ی از میده یمهورم یاد ونگ و کام یا تا هوایی و استارم یا تا ون آشهای وحشتی آوت راست آورای تن تن پروش رام چیت راو تیغه ویسپ خالترم اشم باهوه ایشته ماستی اشتا اصتی اشتا مایی هیاتشایی باهشتای و هزینگرم باش از نام بای وری باش از از نام بای وری باش از نام هزینگرم باش از نام بای وری از نام اشم باهوه ایشته جاسمی ابن که مصداق، جاسمی ابن که مصداق، جاسمی ابن که مصداق. امیدی ازش تی ورآوزه برترانه ابراز آلتی. ولی انتی آوز چه آبراز شیخ تباآش شخ آلتی زربانه کرنه زربانه در آخه آلتی عشمت با و خوبه ایشته مسیوشتی اولتی ایشته مایی یاتشایی و ایشته پیروزباد پیروز باز وقتی وی جهی و پیروز باد خروح عوی جه وحدی نمازی اصنان پیروز باد خروح عوی جه وحدی نمازی اصنان پی از دانم شاسمندان کام باد ایدون باد ایدون ترجباد شانشم و هو و ایجتماسی و اشتاستی و اشتایشم برساد.